بسم الله الرحمن الرحیم الیف لام را تلک آیات کتاب المبین بنام خداوند <تصفح> بخشندی مهربان. الیف لام را آن آیات کتاب آشکار است انا لعلكم ما آن را قرآن عربی نازل کردیم تا شما درک کنید و بیانده نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران وان كنت من قبل اله من الضالين ما بهتین سرگذشت را بر تو باسگو کردی از طریق وحی کردن این قران به تو هرچند چند پیش از آن اسقاف فلان اذ قال يوسف لابيه يا ابتي انني رايت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رايتهم لي ساجدين بخاطر آر هنگامی را کی یوسف با پدرش گفت پدرم من در خواب دیدم ها را به خورشید و ما در برابرم سجده میکنند قال يا بني لا تقف رؤياك على اخوتك فيكيدون لك كيدا ان الشيطان خواب خود را برای برادرانت بازگو مکن که برای تو نقشه خطرناک میکشند چرا که شیطان دشمن آشکار انسان است و کذارک یجتبیک ربک و یعلمک من تأویل الاحادیث و یزم نعمته عليه. ویتم نعمت او عليك و آل آلیعقوب كما أتمها على أبويك من قرن إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. و این گناه پروردگار ترا و از تعبیر خوابها به تو می آموزد، و نعمتش را بر تو و بر آد یعقوب تمام و کامل می کند، همان گونه که پیش از این بر پدرانت ابراهیم و اسحاق تمام کرد، پروردگار تو عالم و حکیم است. لقد كان في يوسف واخوته ايات للسائلين در داستان یوسف و برادرانش نشانه های هدایت برای سوال کنندگان بود ال قالوا ليوسف واخوه احب الى من و نحن اصبت این ابانا ضلال مبين هنگامی که برادران گفتند یوسف و برادرش نست پدر از ما محبوب ترند در حالی که ما نیرومن قریم پدر ما در گمراخی آشکار است اقتلوا يوسف اولق رحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين يوسف را بكشید يا او را بسرتمین دوردس بيکنید تا توجه فتر فقط با شما باشد و بعد زن افراد صالح خواهی بود قالوا قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في ضياعه يلبتقطه بعض السيارة ان كنتم فاعلين يكزارها گفت یوسف را نکوشید و اگر کاری می‌خواهید انجام دهید او را در نهانگاه چاه بیفکنید تا بعضی از ها او را برگیرند و با خود به مکان دوری ببرند برادرم نصف پدر آمدند و گفتند پدرچان چرا تو در برادرمان یوسف به ما اطمینان نمی کنی در حالی که ما خیر خواهی اوستیم اوزل همانا و و انا له لحافظون او را فردا با ما به خارج شهر بفرست تا غذای کافی بخورد و بازی و تفریح کند و ما حافظ هستیم. قال إنني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون پدر گفت من از دوری او غمگین میشم، می میترسم که گرگ او را بخورد، و شما از او غافل باشید. قالوا اوله این اقل گفتند اگر او را بخورد با اینکه ما گروه نیرومندی هستیم ما از کاران خواهیم بود و هرگز چنین چیزی ممکن نیست. فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا اَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبُبُ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْرُونَ هنگامی که او بردند با تصمیم گرفتند وی را در مخفیگاه چاه قرار دهند ما با او وحی فرستادیم که آنها را در آینده از این کارشان با خبر خواهی ساخت در حالی که آنها نمی شبنگام در حالی که گریه میکردند به سراغ قدر آمدند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 ما رفتیم و مشغول مسابقه شدیم و یوسف را نزد اساس خود گذاردیم و گرگ او را خورد تا هرگز سخن ما را تصدیق نخواهی کرد هرچند راستگو باشیم و قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جميل والله على ما و پیراهن او را با خون دروغین نسد پدر آوردهاند پدر گفت هوسهای نقصانی شما این کار را برایتان تان آراسته من صبر جمیل می کنند. و ناس پاسی نخوهم کرد و از خدا باند در برابر آنچه شما میگوید یاری میتردن و جاءت سیارتم فا ارسنوا واردهم فا ادلادن و هم قال یا بسرا ها ذا غلا بضاعه والله بی ما و الله عليم بما يعملون با فرار رسید مأمور آب را به سراغ آفر فرستادند او به خود را در چاه افکند و صدا زد مشتبات این کودکی است زیبا و دوست داشتنی و این امر را و عنوان یک سرماکه از دیگران مخفی داشتند و خداوند و آنچه آنها انجام می دادند آگاست و با با او را به های کمی چند هم فروختند و نسبت به فروختن او به اعتناب بودند شرا کمیتر تیداند روزشان من مصر امرأة اكرمی او نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله ظالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون و آن کس که او را سردوین مصد خرید و همسرش گفت مقام را گرامی دار شاید برای ما مفید باشد و یا او را به عنوان فرسند انتخاب کنیم. و این چونین یوسف را در آن سرزمین متمکن ساختیم ما این کار را کردیم تا تعبیر خواب را بیاموزد و خداوند بر کار خود پیروز است ولی اکثر مردم نمی دانند. وَلَمَّا بَلَغَ اَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجِزِ الْمُحْسِنِينَ به هنگامی که به مرحلی بلو و قوت رسید ما حکم و عیم به اردادیم و این چونین نیکوکاران را پاوداش میدهی وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيتلك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مسواه ان ظمو و زن که یوسف در خانه او بود از او تمنای کامجویی کرد و درها را بست و گفت بشتاب به سوی آنچه برای تو محیاست یوسف گفت پناه میبرم به خدا او یعنی عزیز مصر صاحب نعمت من است مقام مرا گرامی داشتند او یا ممکن است او ظلم و خیانت کنم مسلمن سالمان استكار نمي شود ولقد همم به وهم بها لولا الله اغى الربه كذلك لنصرف عنه السوء آن زن قصد او را کرد و او نیز اگر برهان پروردگار را نمیدید قصد وی را می نمود اینچنین کردیم تا بدی و فحشا را از او دور سازید چرا که او از بندگان مخلص ما بود وَتَبَقَّ البابُ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ الدُّورِ وَأَلْفَ يَسِيدَهَا آلد لَذِ البابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ و هر دو به سوی در دویدند در حالی که همسر عزیز یوسف را تعقیب می کرد و پیراهن او را از پشت پاره کرد و در این هنگام آقای آن را دم در یافتند آن زن گفت کیفر کسی که نسبت به اهل تو اراده خیانت کند جز زندان و یا عذاب دهناک چه خواهد بود قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين يوسف كفت او مراد اسرار بسوي يخوت دعبك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 آن زن روخ می و او افراس گویان است فلما رآقمی صحو کد من قال انه من کید کن ان کید عزیز مصر دید پیراهن یوسف از پشت سر پاره شده گفت این از مکر و حیله شماست که مکر و حیله شما زنان عظیم است یوسف اعرض عن هذا و استغفری لذنبی انک من یوسف این موضوع سرت نفر کرد و تو عیزن نیز اس گناہہت استغفار کن که از خطا کاران بودی وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شرفها حب قد شرفها حبا ان لنراها في ضلال مبين گروهی از زنان شهر گفتند که همسر عزیز غلامش را به سوی خود دعوت می‌کند و عشق این جوان در اعماق قلبش نفوذ کرده ما او را در گمراهی آشکار می‌بینیم فلما سمعت بمکرهم ارسلت اليهم واعددت لهم وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم فلما رأينه وأتبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم هنگامی که همسر عزیز از فکر آنها با خبر شد به سراغ آنها فرستاد و از آنها دعوت کرد و برای آنها پشتی های گران قیمتی فراهم ساخت و به دست هر کدام چاکوی برای بریدن می و در این موقع به یوسف گفت وارد مجلس آنان شد. هنگامی که چشمشان به او افتاد در تعجب فرو رفتند و به اختیار دست های خود را بریدند. و گفتند منزه است خدا این بشری نیست این یک فرشته بزرگوار است قال ثر لکن الذي ولا قادر و التسعن نفسه فاستعظم ولا الا لم يفعل ما امره ليسجنا و ليكون عزیز گفت این همان کسی است که به خاطر عشق او مرا فتنه‌ش کردید آری من او را به خیشتن دعوت کردم و او خودداری کرد و اگر آنچرا دستور میدهم انجام ندهد به زندان خواهد افتاد و مسلمن خار و دلیل خواهد شد قال رب السجن مما و اِلَّا تَصْرِبْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ يوسف گافت پروردگار زندان نزد من محبوب تر است از آن چه اینها مرا به سوی آن میخاند و اگر مک و نیرنگ آنها را از من باز نکردانی قلب من و آنها متمایل میگردد و از جاهلان خواهم بود فست جابله ربه فصرف عنه کیدهم اینهو هوا سمیع العیم پروردگارش دعای او را اجابت کرد و مکر آنها راس او بگردانید چرا؟ که او شناپاس و داناست ثم من بعد, بعد از آن که نشان پاکی یوسف را دیدند، تصمیم گرفتند او را تا مدتی زندانی کنند. ودخل معه السجن فتيالي قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطيب منه نبعنا و دو جوان همراه او وارد زندان شدند یکی از آن دو گفت من در عالم خواب دیدم که انگور برای شراب میفشارند و دیگری گفت من در خواب دیدم که نان بر سرم حمل میکنم و پرندگان از آن میخورند ما را از تعبیر آن آگانسالز که ترا از نیکو کاران می‌بینیم. قَالَ لَا طعام إلا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَن ن تربت مل قوم لا يؤمنون بالله وهم از آنه جیره غذای شما فرارسد شما را از تعبیر خوابتان آگاه ونساخت این از علم است که پروردگارم به من آموخته من آیین جمعیتی را که ایمان به خدا ندارند و به سرای دیگر کافرند ترک گفتم و شایسته چنین موهبتی شدم. و ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولاكن أكثر الناس لا يشكون من صائين فدراونم ابراهيم و اسحاق و برای ما شایسته نبود؟ چیزی را شریک خدا قرار دهیم این از فضل خدا بر ما و بر مردم است ولی اکثر مردم شب گزاری نمی یا ای زندانی من. آیا خدايان پراکنده بهترند یا خدا فند و ما تعبودون من دونه الا اسمان سمیتموها اللّهٔ اللّهٔ أمر آلا الناس که غیر از خدا می چیزی جاز اسم هایی که شما و پدرانتان آنها را خدا نامیده اید نیست. خداوند هیچ دلیلی برای آن نازد نکردن حکم تنها از آن خداست فرمان داده که غیر از نپرسید. او را نپرستید این هست آوین پا بر جا ولی اکثر مردم نمی یا صاحب استجن اما احد کما فیستی ربه خمره و اما فیصلب فتأکن الطیر من رأسه قضی الامر فيه ای دوستان زندانی من. اما یکی از شما آزاد می شود و ساقی شراب برای صاحب خود خواهد شد. و اما دیگری بدار آبیخ می شود و پرندگان از سر او می خورند این امری که آن از من نظر خواستی قطعی و حتمی است وقال للذي ظن أنه ناجٍ منه مذكري عند ربك فأنتاه الشيطان ذكر ربه فأنتاه الشيطان ذكر ربه فلبيت في السجن في و به آن یکی از آن دو که میدانست رهایی مییابد گفت مرا نزد صاحبت یعنی سلطان مصر یادآوری کنی ولی شیطان یادآوری او را نزد صاحبش از خاطر وی برد و به دنبال آن چند سال در زندان باقی ماند وقال الملك إني أرى سبع بقرات ثمان يقولون سبع عجاف وسبع سنبلات كبر وأخر يابسا یا ایها الملأ افسوني في رؤیای يا کنتم للرؤیا تعبرون ملک گفت من در خواب دیدم هفت گاو چاک را که هفت گاو لاغر آنها را میخورند و هفت خوشه سبز و هفت خوشه خشکی را ای جمعیت اشراف در خواب من نظر دهید اگر خواب را تعبیر می کنید قالوا اضرات و ما نحن احلام گفتند خواب های پرایشان و پراگنده است و ما از تعبیر این کون خواب ها آگاه نیستیم وقال الذینجا منهما واذكر بعد امة ان أنا انبئكم بتأویله فأرسلون و آن یکی از آن دو نفر که نجات یافته بود و بعد از مدت متذكر شد گفت من تعویل آن را به شما خبر می دهم مرا به سراغ آن جوان زندانی بفرستی يوسف أيها الصديق افتنا في سبع بقرات سمان يقلن سبع نجاف وسبع بلقات و سبعتون بلات خبر و اقرا یابسات لعلی اغیعو الى الناس لعلهم یعلمون یوسف ای مرد بسیار راستگو دربارۀ این خواب اظهار نظر کن که هفت گاو چاق را هفت گاو لاغر میخورند و هفت خوشه تر و هفت خوشه خشکیده را تا من به سوی مردم باز کردم تا آنها آگاه شد. قال بدل زواعون بهزیین دم فمه الا بزاررو مما میمتقلورون گفت هفت سال با جیه سرحت و آنچه را درو کردید جز کمی که می خورید را در خوشهای خود بکسارید و سخیره نمایید ثم يأتي من بعد ذالک سبع شداد یکلن ما قدمتم لهم نه الا قلیلا من تشصنون پس از آن هفت سال سخت و خشکی و قهتی می که آنچه را شما برای آنها ذخیره کرده اید میخورند خورند جز کمی که برای بعد ذخیره خواهید کرد <تصفح> وقال الملك أسوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما ذال النسوة التي قطعن أيديهم إن ربي بكيدهن عليم سپس سال فرام می رسد که باران فرابان نصیب مردم می شود و آن سال مردم اسیر یعنی میوه و دانه های روغنی می کیدند. ملک گفت او را نزد من آورید و هنگامی که فرستاده او نزد وی یعنی یوسف آمد گفت بسوی صاحبت باز کرد و از او بپرس ماجرای زنانی که دست های خود را بریدند چه بوده؟ که خدای من به نیرنگ آنها. Oh قال ما خطبه كن اذرا وتسني يوسف عن نفسه قلنا فاشل لله ما علمنا عليه من قالت امرأة العزیز الان حفظ حف الحق انا راوته عن نفته و انه لمن الصادقین ملک آنها را احزار کرد و گفت جریان کار شما به هنگامی که یوسف را به سوی خیش دعوت کردید چه بود؟ گفتند منزه است خدا ما هیچ عیبی در او نیافتیم دین هنگام هم سر عزیز گفت الان حق آشکار کشت من بودم که او را به سوی خود دعوت کردم و او اسراس گویان ذالک لِعْلَمَ أَنّی لَم أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ این سخن را به خاطر آن گفتم تا بداند من در غیاب به او خیانت نکردم و خداوند مکر خاینان را رهبری نمی کند و ما ابرع نفتی این النفت لأمارتون بسی سوء ایلا ما رحم ربی این ربی غفور رحیم. من هرگز نفس خیش را تبرع نمی که نفس سرکش بسیار به بدیها عمر می کند مگر آنچه پر را پروردگارم رحم کند پروردگارم غفور و رحیم است وقال الملک اتونی بهی استخلصه لنفسی فَلَمَّا كَلَّمَهُمْ قال إِنَّكَ الْيَوْمَ لَذَيْنَا مَكِينٌ امین ملک مصر گفت یوسف را نزد من آورید تا وی را مخصوص خود کرتانم انگامی که یوسف نزد وی آمد و با او صحبت کرد ملک به عقل و درایت او پی برد. و گفت تو امروز نصب ما منزلت عادی داری و مورد اعتماد است قال خزائن الارض گفت مرا سرپرست خزانه سرزمین مصر قرار ده که نگهداری و آگاهم. هم وكذلك مكناليوسف في الارض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب في رحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنين واين قلنا ما بيوسف بسردمين قدرت ذاتي که هرگونه میخواست در آن منزل میگذی و تصرف میکرد، ما رحمت خود را به هر کس بخواهیم و شایسته بدانیم میبخشیم و پاداش نیکوکاران را زوج نمیکنیم. و پاداش آخره خیر للذین لذین و یتقون و پاداش آخرت برای آنها که ایمان آوردند و پرهیزگارند بهتر است و جاء يوسف فعرفهم و برادران یوسف آمدند و بر او وارد شدند و آنها را شناخت ولی آنها ویرا نشناختند ولمّا جهزوه بجاذهم قال اتوني رأي خلفكم من ابيكم الا ترون اني في الكيلوانا خير المرسلين بهرگامي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 نکیل و فیمانه از غلن است من خواهید داشت و نه اصلا نسی که من شوید قالوا عنه أباه و گفتند ما با پدرش گفتگو خواهیم کرد و سعی می کنیم ما را جلب نماییم و ما این کار را خواهیم کرد وقال لفتيان هجروا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها لعلهم خود گفت آنچی را به عنوان قیمت پرداختند در بارهایشان بگذارید شاید آن را پس از مراجعت به خانواده خیش بشناسند و شاید برکردند فلما رجعو الى ابیم قالو یا ابانا منع من الکیل فا ارسل معنا و هنگامی که آنها به سوی پدرشان باز گفتند ای پدر دستور داده شده که به ما پیمانه از خلا ندهند لذا برادر من را با ما بفرست تا سهمی از خلا دریافت داریم و ما او را محافظت خواهیم کرد قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِنْ قَبْلِ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ اللَّهِمِينَ قُفْتْ أَوْ من نِسْبَتْ بَأُوْ به شما اتمینان کنم گونه که نسبت به برادر شیوسف اطمینان کردم و دیدید چه شد و در هر حال خداوند بهترین حافظ و افهم الراحمین است و لما فتحو متاعهم وجدو بضاعتهم ردت ایلیهم قالو یا هذه بضاعتنا ردت ایلینا و نمیر اهلنا و نحفظ اخانا و نزداد کیل بعیر ذالک کیل یسیر و هنگامی که مطاق خود را گشودند دیدند سرموجه آنها به با آنها بازگردانده کرتانده شدند گفتند پدر ما دیگر چه میخواهیم این سرمایه ماست که به با ما باز پس گردانده شده پس چه بهتر که برادر را با ما بفرستیم و ما برای خانواده خیش مواد غذایی می آوری. و برادران من را حفظ خواهیم کرد و پیمانی بزرگتری دریافت خواهیم داشت این پیمانی کوچکی است قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قالوا الله على ما نقول گفت من هرگز او را با شما نخواهم فرستاد مگر اینکه پیمان معکد الهی بدهید که او را حتما نست من خواهید آورد مگر اینکه قدرت از شما سلب کردند و هنگامی که آنها پیمان موسق خود را در اختیار او گذاردند گفت خداوند نسبت به آنچه میگوییم ناظر و حافظ است وقال يا بنينا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله علیه علیه هنگامی که میخواستند حرکت کنند یعقوب گفت فرسندان من اجد از در وارد نشوید بلکه از درخاق متفرق وارد گفتید و من با این دستور نمیتوانم حادثه ای را سوی خدا حتمیست از شما دفع کنند حکم و فرمان تنها از آن خداست بر او توکل کرده ام و همه متوکلان با او بر او کنند ولم ما دخلوا من حيث امرهم ابوه ما كان يغني عنهم من الله من شيء ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس عقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون و هنگامی که از همان طریق که پدر به آنها دستور داده وارد شدند این کار هیچ حادثۀ حتمی علهی را نمی توانست از آنها دور سازد جز حاجتی در دل یعقوب که از این راه انجام شد و خاطرش تسکین یافت و او از برکت تعلیمی که ما به او داده ایم علم فراوانی دارند، در حالی که اکثر مردم نمیدانند ولما دخلوا عل وسف آوى له خاه قال إنی أنا أقوک فلا تبتئس بما كانوا يعملون. هنگامی که بر یوسف وارد شدند برادر را نس خود جای داد و گفت من برادر تو هستم از آنچه آنها می کنند غمگین و ناراحت نباش فلما جهازه هم بجهاز امجعل استقایت بی رحل جعلت سقایت فی رحل اخیه ثم احزن مؤذن ایت هلعیر اینکم لسارکون به هنگامی که بارهای آنها را بست ظرف آبخوری ملک را در بار برادرش قرار سپس کسی صدا زد ای اهل قافله شما سائق هستید قالوا وأقبلوا اخو بنو عليهم ماذا تفقدون انهار او كردند و گفتند چه چیز گم کردید قالوا نفقد صوا الملك ولمن جاء به حمل بعير وانا بي گفتند پیمانه ملک را و هر کس آن را بیاورد یک بار شطور غلب او داده می شود و من زامن این پاداش هستم قالوت الله لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض و ما كنا گفتند به خدا سوگند شما می دانید ما نیامده ایم که در این سرزمین فساد کنیم و ما هرگز دوست نبوده ایم. قالو فما آنها گفتند اگر دروغو باشید کیفر شما چی؟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 كيف ارمده فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم تخرجها بوعاء أخيه كذلك كذنال يوسف ما كان يأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم در این هنگام یوسف قبل از بار برادرش به با کاوش بارخای آنها پرداخت. و سپس آن را از بار برادرش بیرون آورد. این گونه راه چاره به یوسف دادیم او هرگز نمی توانست برادرش را مطابق آیین ملک مصر بگیرد مگر آنکه خدا بخواهد. در جاکه هر کس را بخواهیم بالا می بریم و برتر از هر صاحب علم آلمیست. قالوا إن يسرق فقد ترق أخ له من قبل فأترها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون برادران گفتند اگر او یعنی بنیامین دزدی کرده تعجب نیست برادرش یعنی یوسف نیز قبل از او دزدی کرده یوسف سخت ناراحت شد و این ناراحتی را در درون خود پنهان داشت و برای آنها ها اظهار نداشت همین اندازه گفت شما بدتر هستید و خدا از آنچه توصیف می کنید آگاهتر است قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخ كبير فخذ أحدنا مكانه إننا نراك من المحسنين. گفتند د. اي آذی. او پدر پیری دارد. و سخت ناراحت می شود یکی از ما را به جای او بگی ما ترا را و کاران می بینیم. قال الله ان نأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده گفت پناه بر خدا که ما غیر از آن کس که متاقی خود را نزد او یافته ایم بگیریم که در آن صورت از من خواهیم بود فلمستی ازو منه خلطون جیه قال کبیرهم تعلمون أن أباكم قد أخذ عليكم موفقا من الله ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موفقا من الله ومن قبل ما فرضتم في يوسف فلن ابرح ارض حتی عذن لی ابی او یحكم الله لی وهو خیر هنگامی که برادران از او معیوس شدند به کناری رفتند و با هم به نجبا پرداختند بزرگترین آنها گفت آیا نمیدانید پدرتان از شما پیمان الهی گرفته و پیش از این درباره یوسف کوتاهی کردید لسا من از این سرزمین حرکت نمی کنم تا پدرم به من اجازه دهد یا خدا فرمانش را درباره من صادر کند که او بهترین حاکم کنندگان است اردیعو الى ابيكم فقولو كَنَزَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا پدرتان باز کردید و بگویید پدرجان جان پسر دزدی کرد و ما جز به آنچه میدانستیم که باخی ندادیم و ما از خیب آگاه نبودیم. فَاسْتَأْلِلْ قَوْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا برای اطمینان بیشتر از آن شهر که در آن بودیم سوال کنم و نیز از آن قاصد که با آن آمدیم بپرس و ما در گفتار خود صادق هستیم بل سولت لكم انفسكم أمرا فصبر جميل اعسى الله ان ياسيني بهم جميعا این هُوَ الْعَلِيمُ العلیم یعقوب گفت نخیر بلکه هوای نفس شما مسئله را چونیم در نظرتان تسلیم داده من شکی می میکنم شکی جمیل امیدوارم خداوند همه آنها را به با من باز گرداند چرا که او علیم و حکیم است وَتَوَلَّا عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَتَفَى عَلَى يُوسُفَ وَذِيَطَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ و از آنها روی برگرداند و گافت با اصفا بر یوسف و چشمان او از اندوه سفید شد اما او خشم خود را فرو می بارد و هرگز کفران نمی کرد قالوت الله تفتع تذکر یوسف حتی تکون حرضا او تکون من الهال گفتند به خدا تو آن قدر یوسف صرف میکنی تا مشرف و مرگ شوی یا هلاک کنی. قال انما أشكو بفي و حزني الله وأعلم من الله ما لا تعلمون گفت من تنها غم و اندوهم را به خدا میگویم و شکایت نزد او میبرم و از خدا چیزهایی می دانم که شما نمی دانید یا بنی یذهبوا فتحسر من یوسف واخیه ولا تيأسوا من رحمة الله ف سرانم بر بروید و از یوسف و برادرش تفحص کنید و از رحمت خدا مأیوس نشوید که از رحمت خدا جز قوم کافر مأیوس نمی شویم. فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسْتَنَى وَأَهْلَنَا الْبُرُو وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَةٍ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَةٍ فَأُوفِ الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا هنگامی که آنها وارد بر او یعنی یوسف شدند گفتند ایدی ما به خاندان ما را نارهتی گرفتند و مطای کمی برای خرید مباق خساویی و خداوتهی پیمانه ما را به طور کامل وفا کن و بر ما تصدق بنما که خداوند متصدقان را پاداش میدهند قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون گفت آیا دانستی چه با یوسف و برادرش کرده اید آنگاه که جاهل بودید قالوا ان انك لن سيوسف قال انا يوسف وهابا اخي قد من الله علينا انه من يتق ويصبر فانه الله لا يضيع اجر المحسنين قلت ayat humani yusufasti qalt ari منم یوسف و این برادر من است خداوند بر ما منت گذاشته هر کس تقبا پیشه کند و شکی بایی و استقامت نموکید سرانجام پیروز می شود چرا که خداوند پاداش نیک کاران را زاگه نمی کند قالوت الله لقد الله علينا و این کن گفتند به خدا سوگند خداوند تو را بر ما مقدم داشته و ما خطا بودیم. بوديم قالنا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو گفت امروز مرامت و توبیخی بر شما نیست خدا بند شما را می بخشند و از همون راهیمین است از همو بقمیصی هادا فالکوه على وجه ابیتی بصیرا و اتونی بی اهلکم اجمعین این پیراهن مرا ببرید و به صورت فدرم بی اندازید دینا می شود و همه گی خانه بالتا نست مناکی. ولما فضل العیر قال ابوهم اني لا أن هنگامی که کاروان از سرزمین مصر جدا شد. پدرشان یعقوب گفت من بوی یوسف را احساس می کنم اگر مرا با نادانی و کم عقلی نسبت ندهید گفتند به خدا تو در همان گمراهی سابقت هستی فَلَمَّا أَن جاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَوَرِثَ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَمْلَأُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ أَمَا هُنْكَ أَمْكَ بَشَارَةٌ هُنْدَ أَمَت آن پیراهن را بر صورت او افکند ناگهان بینا شد. گفت آیا به شما نگفتم من از خدا چیزهای سراغ دارم که شما نمی دانید. این گفتند پدر از خدا آمرزش گناهان ما را بخواه که ما خطاکار بودیم قالتو فاستغفر لکم هو الغفور به زودی برای شما از پروردگارم آمرزش می طلبم که او غفور و رحیم است. فَلَمَّا دخلوا عَلَى إِلَيْهِ هنگامی که بر یوسف وارد شدند او پدر و مادر خود را در آغوش گرفت و کاف همگی داخل مصر شوید که ان الله ذا امنو امان خاحيد بود وقالوا فا ابوه على العوج وخر له سجبا وقال يا ابتي هذا تاويل يا من قبل اقد جعلها ربي حقا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي ذَهْرَ جَنِيٍّ مِنْ أَفْسَدِينِ وَجَاءَ بِكُمْ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَذَرَ الشِّقَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي این ربي لطيف لما يشاء هو با پدر و مادر خود را بر تخت نشاند و همگی به خاطر او به سجده افتادند و گفت پدر این تحقق خوابی که قبلا دیدم خداوند آن را به حقیقت پیوست و با او به من نیکی کرد انگامی که مرا از زندان خارج ساخت و شما را از آن بیابان و اینجا جا آورد و بعد از آن که شیطان میان من و برادرانم فساد کرد پروردگار من نسبت به آن چی و شایسته می داند صاحب لطف است چرا که او دانا و حکیم رب قد أتى من الملك وعلمتني من تؤي للأحاديث فاطر السماوات والأرض أنتولي في الدنيا والآخرة توفني من پروردگارا بخش عظیم از حکومت من بخشیدی و مرا علم تعبیر خوابها آگاه ساختی توی آفرین اندهی آسمان خواب زمین و تو سرپرست من در دنیا و آخرت هستی مرا مسلمان بمیران و به صالحان ملحق فرما ذالک من انباء الغیب نوحیه الی و ما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وهم ینکرون این اسخبار او غیب است که به تو وحی میفرستند تو نزد آنها نبودی هنگامی که تصمیم گرفتند و, و ما اکثر ولو حرفت بی مؤمنین و بیشتر مردم هر چند اصرار داشته باشید ایمان نمی آورند و ما تسألهم عليه من هو الا للعالمين و تو اذكر هرگز از آنها پاداش مطالبه نمی او نیست مگر تذکری برای او و جهانیان وكأنهم من آیه في السماوات والأرض يمون عليها وهم عنها و برچه بسیار نشانی از خدا در آسمان و زمین وجود دارند که آنها از کنارش می و از آن روی می و و اکثر آنها که مدعی ایمان به خدا هستند مشرکند افآمنو ان تأثیهم غاشیت من عذاب الله او تأثیهم ساعت بوتتا و هم لا یشعرون آیازین ایمن هستند که عذاب سراگیری اثناهی خدا به سراغ آنها بیا گد یا ساعت رستاقیز فرار فرارسد در حالی که آنها متوجه نیستند قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركن بگو این راه من است که من و پیربانم با بسیرت کامل همه مردم را به سوی خدا دعوت میکنیم منظه است خدا و من از مشرکان نیستم و اسلما يسير في الارض فينظر كيف كان عاقبه الذين من قبلهم ولدار دار الاخره يقول للذين استقوا افلا تحسنون وما نثر السادم پیش از مردان از اهل شهرخا که وحج به آنها می کردیم. آیا مخالفان دعوت تو سیر در زمین نکردند تا ببینند عاقبت کسانی که پیش از آنها بودند چه شد؟ و سراج آخرت برای فرهیزگاران بهتر است؟ آیا فکر نمی کنید؟ حتی از و نهم با دعوت خود و دشمنان به مخارفت چنان ادامه دادند. تا رسولان معیوز شدند و گمان کردند که حتی گروه که اندک مؤمنان به آنها دروغ گفتند در این هنگام یاری ما به سراغ آنها آمد هر کس را می خواستیم نجات می دادیم و مجازات و عذاب ما از قوم سیانکار بازگردانده نمی شود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 و تفصیل کلی شیعین و هدن و در سرگزشت های آنها درس عبرتی برای صاحبان اندیشه است اینها داستان دروخی نبود بلکه وقت آسمانی است و هم آهنگ آه است با آنچه پیش روی او از کتب آسمانی پیشین است و شرح هر چیز که پاوگه سعادت انسان است و هدایت، و رحمت برای گروهی که ایمان می آورند.